أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصاعة في كل صاعة عليهم محافظا مقائدا مناصرا مدليلا معينا حتی تسکنه اردک توعا و تمتعه فی طویلا السلام علیکی یا مولاتنا یا فاطمه الزهراء السلام علیکم یا اهل بیتن ببه خب بحمد الله بارد عقلیه بحث وحدت شخصی وجود شدیم که چند تا دلیل عقلی دارن که الان بعضی هاشم برگشت به عدل دیگر میکنه مهمترین دلیل عقلی که اینها ترک کردند و به لسانهای مختلفی مطرح شد و در کتب مختلف سلام علیکم هم کتب مختلف فلسفی این رو عزیزان می توانم مشاهده بکنند در اسفار و شرح اصفارهای به بعضی نوشته نویشته شده و اینها مهمترین دلیل همون دلیل بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیسه من امنها است که عرض شد مختصرا که مفاده این دلیل این بود که وقتی خداوند متعال بسیط است جوز ندارد مرکب نیست اون که اصل است همین از خداوند متعال مرکب نیست هیچ ترکبی ندارد چون ترکب با واجب وجود بودن خداوند متعال سازگار نیست چیزی که مرکب است واجب الوجود نیست حادث مختاج فقیره و صفات واجب الوجود رو نده رضا خداوند متعال که چون مرکب نیست و به تعبیر دیگر بسیط است بسیط یعنی اینجا هم مرکب به تعبیر دیگر خداوند متعال بسیط است پس هیچ حد یقفی هم نباید داشته باشه چون هر جایی رو بخوایم ما فرض بکنیم که یعنی خداوند حد یقیق خداوند متعال هست در اونجا خداوند متعال متوقف می شود یعنی خداوند متعال مرکب می شود خداوند متعال محدود می شود و محدودیت مساویس با چه مساویس با این که بالاخره ترکیبیاختن اون وجود از حد و محدود و چارچوب پیدا کردن و همین که بشه داخل چارچوب وجود رو فرض کرد یعنی که اون وجود جوز دارد که اجزای متعال مختلفش به حدود مختلفی مثلا اینها در آین پس خداوند متعال نامتناهیست یعنی نامتناهی بودن خداوند متعال رو اصلا ما از همینجا در آوردیم و از اینکه خداوند متعال مرکمت نیست وقتی خداوند متعال نامتناهی شد تعبیل رو که دیگر نامتناهی جا برای قیل نمی بزارد. همه جا رو این نامتناهی فرا گرفته است و وقتی همه جا رو همه چیز رو فرا گرفته است پس همه چیز همون وجود است و وجود خداوند متعال خب یک نقد اولی رو ما بیان کردیم بر این دلیلون این که آجون اینه که بالاخره خداوند متعال بسیط است این هیچ ملازمه این ندارد که خداوند متعال سلام علیکم خداوند متعال نامتناهی باشد همه امکنه موجود باشد خداوند متعال جز ندارد خب قبول پهد خداوند متعال جز نداشت خب در لا مکان خداوند متعال رو به نهبه شما بسیر فرض بکنید در جایی که مکان نیست وقتی خداوند متعال رو به نحوه بسیط فرض کردید داره وجودهای دیگر چه رفتی به این وجود دارند؟ اینی که با هم دیگه تضاهم میکنند مثلا اگر نمیدونم بخواد جو چارچوب داشته باشد سبب هر پیدا کردن خداوند مشاهرون شد و همه در فرض مکان است که در یک مکان همه جا رو گرفته اگر بخواهد بالاخره در مکانی باشد دون مکان دیگر یعنی براخلی مای چارچوب دور خداوند متعاد کشیدیم پس خداوند متعاد مثلا دیگه محدود شد و زی جز می شد اصلا مگر مکان ملازمه لازمه وجودی موجودات هست یعنی حالا میخواهم ارز بکنم که به حسب برهان عقلی اینو دقت بکنید کاری اوقات ذهن انسان تا کار انجام بوده کاری ای اوقات تعقل نمی کند تصور شکل تصورم به معنای تعقل نه فقط صورت در ذهن میاره شکل درست میکنه بله به حسب فضای شکلی ذهن انسان هر چیزی رو که در ذهنش میاره متناسب با این عالم مادی و این بالاخره اموری که بعد و عباد و اینها داره تصور میکنه لذا حتی خداوند متعاد رو هم ذهن انسان نمیتونه بلون شک تصور بکنه یکی میخواد مثلا حضوری نسبت به خداوند متعاد پیدا بکنه سلام خیلی از ازخانه بسیطه اونهایی که هنوز مثلا کار نشده روش ببینیم که نه حتما بالاخره تای زهنش شکلی رو تصور میکنه خب این ذهن تعقل نیست و هیچ بالاخره ای هم نداره. بالاخره خود خب ذهن انسان شک می‌سازه برای هر چیزی. اینکه برهان عقلی نشود. اماان تعبیر روایت هم همین است که ذهن انسان هر چیزی را که تعقلاً در فضا تصور می این در خود توحید کافی این روایت رو می‌بینه که چه بسا تعبیر فضا همان مکان باشد. هر شب ما در مکان تصور میکنند و الا اصل مکان لازمه وجودی موجودات که نیز. حتی خود انسان حالا خود انسان که آقاین فلاسفه مثلا میگن که حقیقت انسان چیه؟ حقیقت انسان مثلا بر حیوان ناطقه حالا حیوان ناطق این چه استعزامی با مکان دارد؟ چه استعزامی و مکان دارد؟ مکان هیچ جایی حیوان ناطق نخواب میده نه فصلشه نه جلسشه هیچی هیچ؟ هیچی نظر با خود انسان هم حتی مکان لازمه وجودی خود انسان هم به تعبیر اینها نیست چه برسد به خداوند متعال لذا ما, ما موجودات خود اینها غالبا میگن ما موجودات فراوانی رو میتوانیم فرض بکنیم ها بلکه عمره موجودات هم همین هستند گون‌ها در بلاخره فضای لا مکان هستن اونها مجرد هستن مجرد از مکان هستن و عمده موجودات همین جانن خب یکیشم خداوند متعال حتی نگیم خداوند متعال هم خالد مکان است خودش مکان ندارد خب این همه لامکانیات خود انسان هم مکان لازمه وجودیش نیست خدایوند متعالم چه استلزامی دارد که حتما مکان لازمه این وجود باشد وقتی خداوند متعال مکان نداش حالا وجود بسیط در لامکان بدون مکان حالا چه ضربهی به وجودهای دیگر میزنن چه ضربهی می به وجودهای دیگر میزنن ربطی به همدیگر دیگر ندارن این بسیط جز هم نداره سر جای خودش هم از بقیه موجوداتی هم که هزار تا جز دارن سر جای خودشون هست پس این نقد دلیل اول که شما اصلا این بسیط الحقیقت کل الاشياء و لئی سمشه ایمن ها فرقه بر مکاندار بود اصلا فرضش در مکان است. فای شما اصلا این رو خداوند متعال رو مکان رو از خداوند متعال تجدید بکنید اصلا نمی توانید توضیح بدهید توانید توضیح دهید که بسیط حقیقت چرفتی به کل اشیا دارد پس نقده اول همین شد که خب خداوند متعال این که بسیطه هست لازمش نامتناهیه در مکان نیست و اینی که شما میگید پس خداوند متعال نامتناهیه در مکانه است این دلیل غلط است و اینم ارز کردیم فل... فلواقه شما در اینجا یک اصل مسلمی رو فرض کردید و اون اصل مسلم اینه که خداوند متعال بسیطه هیچ وقت نمیخوانید زیرش بزنید بل از این میخواهید استلزامات این رو در بیارید آیا میشود استلزام یک چیزی بشود نقیز خودش خوب این که دیگه دقیقا میشود بحث اجتماع نقیزه که افتدایی ترین اصل فلسفی و اصل منطقی و اصل است که این پایه اولی از بدهی ترین اصل هم هست نمیشه که استعمال نغیزه در حالی که شما میگید که خداوند متعال بسیط است از بسیط بودن نتیجه میگیرید خداوند متعال بسیط نیست چرا چون گفتیم نامتناهیه در مکان لازمه این است که خداوند متعال تمکن در مکان پیدا کرده مکان هم که همین رو که شما بُعد و نمی طول و عرض و که همهشون منقسم میشواد به میلیون ها جز میلیارد ها جز موجودی که متمکن در این مکانه یعنی که بی‌نهایت جز دارند. از هر فقیر فقیرتر است از هر محتاج محتاجتر است هر هم عاکم است خب این دلیل اول که مطرح شد گفتیم که خب اصلا اصل اشکال هم بر همین است که بسیط الحقیقه کل اصلا هیچ طبیعتی ندارد این اولی دوم خب این مسئله اینه که آقا جون حالا بذم ما با شما خیلی خود را بیای هر چی شما میگید هر چی شما میگید قبول جوری خداوند تصور میکنید می خداوند متعال نامتناهی در مکان ها قبول این استزمات هم کنار هستن. همین که شما میگویید خداوند متعال نامتناهی در مکان است. حالا ما تو اون بحث قبلی نامتناهی در مکان اینه که این هم اینها میخوان بیان که خداوند متعال در همه مکان ها هست. ما بس اصلا هم بحث همینه دیگه در همه مکان ها همه جا هست پس چه برای وجود خیر نمیذاره؟ دست برها همین بود. اشکال اولی بود که اصلا اینکه شما نامتناهی مکانی که خداوند فرما تعالی فرض کردید هیچ رابطی و بودن ندارد و خودش هم خلف مدعای شماست. این که اشکال اول بود که عرض کردم عزیزان. اشکال دوبار میخوام از بکنم با فرض اینکه خداوند متعال رو نامتناهی در مکان بدانیم. دیگه از این بالاتر راه اومدن، دیگه امکان ندارد دیگه ما همیشه همجوره راه اومدیم. با این حال هم هیچ رابطه این به وحدت شخصی وجود نخواهد داشت اون چیزهایی که من گفتم عزیزان نوشتن نگاه بکنید من این بین شماره 3 و شماره 4ی که من حالا توی تقریز برهان کردم خداوند متعال وجود نامتناهی همه چیز و همه جا را فراد گرفته چهار وجود نامتناهی همه چیز است در اینجا یک مقالطه روختار به اینجا کسی متوجه نشد آقا چه ربطی دارد از وجودی که همه چیز و همه جا را فراد گرفته. بل چه رفتی دارد که این همه چیز است به تعبیر دیگر به تعبیر فلسفی اش را از میکنم به تعبیر مثالی عرض میکنم او جندی است دلیل عقلی هیچ برهانی بل در این عالم خلقت وجود ندارد که تداخل در مکان محال باشد تداخل در مکان هیچ دلیلی نداریم که محال باشد یعنی هیچ اشکاری ندارد که در یک مکان دو تا موجود صدا موجود هزار تا موجود پی نهایت موجود در یک مکان باشد هیچ دلیل عقلی و هیچ برهانی وجود ندارد که در یک مکان منحصر باشد که فقط یک موجود باشد مثلا برای تبیین در مثالش هم میشه بیان کرد مثلا مثال این رو بزنن که مثلا میش شی، شیشه شیشه که از اون نور رد میشه مگه این شش نور رد نمیشه خب تو همون موطن و همون سیزدول های شیشه شش حد نور هم هست خب نورم بناشو چیز مکانمند گفتیم میشد در این درکان حفظ شود چیز غیر مادی که نیست دیگه میبینیم که نور در شیشه وجود دارد هم شیشه است هم نور هست شیشه سرجاشه نور سرجاشه الان توی بحث فیزیک جدید که بحث امواج که دیگه کاملا متصه آه شما مخاطب عکس رادیولوژی را بگیرید خلاصه این امواج میرفسن در بدن تمام مثلا استخون ها و اینا میره برمیگرده خب اینها در بدن من که مثلا هیچی بود تو بدن من که اینها رفت که نبود که در بدن من بالاخره یه مایه یه چیزی بود اما تو همون فضا امواج هم بود در این فضای اتاق میلیون ها میلیون امواج حالا مثلا امواجی که از قدیم ها بوده تو الان امواج هم کسی نگه مادی نیست چرا امواج هم مادی مکانمنده چرا؟ چون مثلا الان مثلا در همین بحث های امنیتی اما این ها تقریب مثال ها. ما به هیچ مثالی هم نیاز نداریم همین که سلام داریدم، همین که برهان بر عدم تداخل نداریم برای ما کافیه هیچ مثال هم نداشته باشیم و اصلا بالاخره ضرری به ما نمیزنه شما اول دلیل بیاد که تداخل در مکان محال است، بعد بالاخره بحث و نتیجه بگیم خب مثلا هم مثال داریم مثلا که اکثر الان مثلا تو این فضاهای امنیتی که هست تو این دیوارا نمیدونم سیم و از این چیزها که میذارن دیگه این امواج از این دیوار بیرون نمیره محبوس میشواد در این اتاق معلوم است که امواج هم مکان دارد اما در همون فضایی که امواج هست بدن ما هم هست همه چیزهای دیگری هست تداخل در مکان هیچ ای هی هم وجود مثلا برای چیزها دیگه تیگری دیگه این خود عزیزان ها رو پیدا میکنه اولا تحضیم کنم وقتی وقتی خدا هست شخص دیگه این هست حد خوردن خدا هست ناشو رفتیم میاد خواهد خواهد همین خواهد رفتیم بالاخره بینه اینکه که خدابند در مکان هست با منم باشم حدش کجا شد؟ همین جایی که من هستم خدا هم مثلا باشد خب چیشم چی میشه مثلا؟ یه دیگه بسید شما هستید خدا نیست خب به همه دارد تو همه یه؟ این افعاد دیگه خدا نه، نه. ندارد خب اولا اینها که میخوام بیان خدا که بود نداره. نه خدا که بود خدا که نداری نه, نه خدا نامتناهی در مکان است میخوام بگم خداوند متعال که نامتناهی در مکان است لازمه نامتناهی بودن در مکان این حقیق نیست که بالاخره همه چیز هم خداوند مودا اینش است. هست یعنی ما بین اون شماریسه و شماریسه شده ایک مقالده گنده اینجا بود تداخل در مکان هیچ پرهان بر استحاله اون وجود ندارد لذا با شما هم خیلی راخ بگم بگم خداوند متحال نامتناهی در مکان هم هست وازم لازمش این نیست که همه چیز خداوند متعال باشد چون در یک مکان میشواد خدا باشد ما هم باشیم حلولم نیست من یارم سر این بحث حالا اسمامم خیلی بنا نداریم بالاخره از باب اینکه ترویج نشه طرح تر بکن آره یزدان پناه نمیدونم مستثنا مشهوره بنده خدا این بنده خدا مثلا این اشکال رو که بالاخره مطرح بود و بعضی‌ها هم تر کردن ایشون میگفتش که خب اگر همه چیز حرفی رو بزنی لازمش حلول میاد خب بهش میگم لازمش حلول بیاد مگر بالاخره یک برهانی که اولاً، می‌خوام این حلول هم بیاد، بالاخره وقتی شخصی نشود. شما توانید که بالاخره خودتون یک دلیلی که ممکن است هر تا نتیجه داشته باشه، شانسی کهشون انتخاب بکنید. بحث ما اینجا این است که به حساب عقلی پیش بریم. به حساب عقلی هم این سه تا نتیجه داره. شما رو چه حساب دلیلی برای وقتی از شخصی رو پذیرفتید، حلول رو نپذیرفتید، حالا بیاد. بالاخره شخصی نشود. ثانیاً حلول هم نمی‌شود. قولونان چه وقتی به قولون داره که خداوند متعال حال در وجود یک شخص شده یعنی وجود اون شخص رو مکان خودش قرار داده نه خداوند متعال در همه امکنه هم هست در اون امکنه هم, هم وجودات دیگری هم هستن حال نشد که حلول هم نشد که خیلی هم بخواد دعوا بکنیم به یک اسمش میذاریم حلول خب بذارید حلول سر اسم که دعوا ندادیم نهادش میگیم حلول اشکال نداره حالا خیلی میگم دعوای ولی هر اسم دیگری شما میخواین براش بذارید پس به دوم این برهان وسیط الحقیق کلول اشیا همین شد که حتی نامات ناهیه در مکان هم فرض بکنیم وقتی به این ندارد که همه چیز مکان است میخواین این رو بنویسم عزیزان یاد داشت خدا این برهان رو اشکال نه اصلا این حلول اشکال ندارد هرون از هرون از از این حلول اصلا این حلول نه همینطوره میخواینم که اولا حلول نیست ثانیه نه حالا بگید حلوله مثلا... خب <tiro> tiro tiro این خب من اي نه اینی که حرض کردم نه شما که دیروید مسائل را هم دارد اینی که کردم در همه مکان ها خدا باید مطاعت باشه موجود دارد هم باشه مستزم حرول ایتونه سر جایتونه هم ها سر در مکان مهاد نیست مسترزم حرول هم نیست این هم من دور این بود درابن این شماره دو شوشن نرد شماره نیست شو که عزیزان دوشته تو <تضحبه> <تضحبه>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 اذا اگر خدایان و متال را در در ایران مسانی بگیریم هیچ فرهانی نداریم و حالی نداری. الو تو وای از شما نقش برآورد خب من اینا رو ببینم نه ما ششام همین برای آوردن اینو میگیم اینو میگیم ولی ما نمی نویسیم خب می رود خب نمیخواد می خوام بس بگیم اینو بگیم بنویسیم اگر خداوند متعال را حتی اگر خداوند متعال را بی نهایت مکانی در نظر بگیریم آمد بسیتون برد مگام بسیتون برد مگام بسیتونیم بسیتونیم هیچ فرحانی ندادیم که قداخل در مکان محال باشد در مکان یکی توفر افتای خرم ها در یک مترات مترات چند موجود باشه مثل موجود در مکام ها با موجودات نا دیگر ندارد و وجوده از شیشه نزا می شود در یک مکان مکان هم خداوند باشد خداوند باشد و هم تمام که اجاز دیگاه با غیریت هم هم برقرار است در موضع تمامین فن احسن هم ندارند در این درون چنین است aquí کنیم که بالاخره این حور هم اشکغال ندارد. بچه دیگری این که بالاخره چیزی اضافه در اینجا بر اصل م دوعاه شما نکردید لازمه فاصله اضافی جدا از اینکه یک موجودی متمکنه در مکان شده پیدا نکرده. یعنی حدوری که شما بالاخره میگوید طبعا اینها میگن که اصل متمکنه در مکان اشکال نداره فقط چارچوبه یعنی اینی که در یک قالب قرار بگیرد این مشکل خب در این حدوری که شما فرض کردید در یک قالب قرار نگرفته از قالب عبور کرد خداونده ایتا هستنیم این صور دلیل اول که گفتیم اصلا تمک در مکان خلطه اینو را لفوره از حتی بگیم خداوند مطال ناوت ناهیه در مکانه برهانی برای عدم ترا خورده در مکان نداریم حالا تازه یک دلیل دیگه یه مثال دیگه هم خود فلاسفه میزنم مثل میگن وجود نفس در بدن اینها وجود نفس در بدن را اینی که میگن نفس در بدن این گستنزم را زیست این کار کردیم آه. توی توی قسمت اول عرض کردیم اما میخوام بگم که اگر ما متناهی بودن خداوند رو مثلا در مکان رو پذیرفتیم دیگه این لازمه بیشتری دیگه نداره از همان نغزایی که کردیم چون دیگه در قالب خاصی قرار نگیره از همه قالب ها عبور کرده شما طبعا حضور رو اشکال می‌دونید که در قالب خاصی باشه در قالب ها عبور کرده مثال دیگری هم می‌زنم مثال وجود نفس در بدن خب نفس رو میگن در خود بدنه اینکه مثلا یک ای ارتباطی داشته باشه خب این نفس در تمام موتنهای این بدن جسمانی ما از یک طرف جسم از یک طرف در تمام این مواطن جسم در همه قسمت‌های جسم نفس هم حضور دارد خب پس چطور شد خود شما پس مثالی رو زدید که خود واقعا فراس مثال دید که در یک مکان هم جسم است هم مثلا نفس است پسو خب این نقد دوم که حتی بالاخره با فرض تنزل از جواب اولمون بازم این داله برای وحدت شخصی وجود نیست یه بحث ثومی هم هست که حالا این رو بعضی هم به عنوان دلیل مستقل ذکر کردن یعنی حالا بعد آدرس هاش هم میتونید خود همین شواره روبوبیه صدر و جاه دیگر رو هم ببینید حالا بعضی با من دلیل مستقل ذکر کردن کارو ما دیدیم لزومی هم نداره با عنوان دلیل مستقل در زمن همین دلیل عرض میکنیم با اون این که اینی که شما میگوید خداوند متعال حد ندارد اصلا منظورتون از حد داشتن چی هست اگر منز... این سفو میه بله. این جواب سفو اینه که حالا گفتیم که اگر خداوند متعال حد داشته باشد حد مستلزم ترکب مثلا اون ذات از حد و محدود رو شود منظورتون از حد چیه اگر منظور از حد این از که خداوند متعال مثلا چارچوب پیدا کرده چارچوب مکانی که گفتیم این که واسه مستلزم حد پیدا کردن خداوند متعال نمیشود اگر منصورتون از حد که بعضی این رو گفتن اما در لسان این رو گفتن در عمل اون حد رو نتیجه گرفتن اینجا هم خلقی رو اختاده گفتن خب خداوند متعال، اگر بخواهیم بلا خراب قیریتی وجود داشته باشد موجودی غیر از خداوند متعال شد همون موجود به وجودش به این قیریتش حد خداوند متعال شود اگر منظور از خود... بله بله هر میکنم اگر منظور از حد همین فرق داشتنه این فرق داشتن که اتباقا اصل مدعای ما همینه ما میخوام بگیم اتباقا ما به خداوند مطال فرق داریم بینونیت ما ما بینونیت ما به الامتیاز وجود دارد بالاتر اصلا تمام ما به الامتیازیم یعنی متوارنه به تمام ذاتیم و اصلا همین که یک موجودی بسیط باشد یک موجودی دیگر مرکب خود همین فرقه نیاز به فرق دیگری نیست. اگر چون بعضی موقع حج رو در منطق همین تعریف همین وجود مابه امتیاز معنا می کنند این وجود مابهل امتیاز موجب ترکیب ذات الهی نمی شود. این موجود مولا لازم نیست که خداوند دو تا اجزا داشته باشد. میگم همین به اصلا ما امتیاز است. یعنی همین بی جزء بودن مابه بهل امتیاز نسبت به وجوداتی که جزء دارند. لذا مابهل امتیاز که اصل مدعای ما اصلا ما میخوام همین رو هم صابت بکنیم و این مستلزم ترکب ذات الهی نمی شود این رو هم چون مثلا در بعضی از کلمات میگن بعضی مثلا به عنوان دلیل مستقل ذکر کردن حالا شاید این عبارت صدرالم امروز اگه فرصت شود این کارو براتون بخونیم خب که اینی که خداوند متعال بخواهد هردی داشته باشد غیریتی بخواهد خواهد فرض شود موجود ترک ترکب زاد می شود این باز در اینجا این مقالطه ای کس کردیم رخ داده خب اینا هم می خواهیم نوشتن عزیزان رو احسنتا احسنتا بگم خب که اگر منظورتون همین که بدخلتشون حد در منطق قوامش به معامل امتیازه یعنی که اصلا در ملخلت یک جنس و پسی اوارده بشه که حد حد تان میگن حالا جنس که هم منظور معامل اشتراعیتی خیلی درزومی ندارد. ما میخواه میگم در جایی که توانیم تمام ذات هم کنجا بله خله بوزم حد منطقیم متصور تصورم چون بله خله هم این موابهل مهم بحث تحریف منطقی اون فصلشه اون موابهل امتیازی در اینجا که موابهل امتیاز موجب محدود شدن خداوند مطال موجب ترکب یا تحریفی موجب ترکب و خداونده مطال نمی شود به تحریفیت این محدود شدن هیچ اشکالی در و این یعنی که حد خورده یعنی که پروردداشتن داشتن امامو این این این در اسم حد نبودهام یعنی که حد. در واقع مثلا خوردنش رو حد. راستا راستا اینا کردن که حد از وقت میشه. همین که اسم دیواری رو فرض کردن که خب دیوار این دیواره همین چارچوب مثلا اینا فرض کنید دیواره چین فرض بکنید بااغ از این این دیواره و اون چیزی که داخل دیواره میخوان که شرح رو این که همون بی‌جوز بودن خودش حدش اصلا. پس برهانش مهمه دیگه نزدیدش رو بنیسید این اینو با خاطر حضرت جواب دوم بود اصلا. جواب اول این بود که اولا که اون جواب اصلی که اصلا لازم مکان حتی لازمه وجودی انسان هم نیست. یعنی در خود توضیح مفصل دادیم. حتی در خود حیوان ناطق در اصل و حقیقت انسان ناطق مکان داخل نشده چه برسه به خداناتان؟ بزاق بالاخره بساطت در لا مکان در بدون مکان ذرای به وجود اقیان نمیزد جواب یک بود و دوار بود که برطر از این تا دوان حال نامتناهی در مکان باشد همون چیزی که میخواهمونی جذب همه جا رو پر کرده باشد خدا همه جا رو پر کرده باشد لازمه چیز که همه چیز هم خدا باشد هم سه اگر منظور از هر یک چارخوب بوده مثلا یک بیزاری از اون طرف اومدند که دائما به معنا میشه دیواری هست که گذشت که می‌گذره یا مجھے بہقے دا کردا کردن اے لے متعال چاندنے و اگر منظور همون رو نمی عارفه بنابراین بازم بالاخره اونها مابعد امتیاز رو قبول داشتن حالا دیگه من جدا فرهنگ نمی سملا هم این عذر را و راهی که ما در خاطر این بعضی هم حالا می توانیم این را هم به عنوان برهان مستقلان در نظر بگیریم. یک تعمیم هم بحث ما داره که حالا این رو هم با هم بعضی ها به عنوان برهان مستقلی ذکر کردن. حالا این رو هم در ضمن همین برهان می شود کرد چون همه اینها ناشی از بحث بساطر هست و از بحث بساطر باتر شده می شود این رو تعمیم همین برهان بزنید البته حالا من تخت چنوزه قبل همینجوری گشت و گذاری در اینترنت کردم کردمو ببینم به در این مقالات و اینها چه نوشتن یه آقایی که دیدم اتفاق الان مشهورم هست شو اتفاق همین آقای ازان فرات خیلی بالاخره نرخ بهشون حالا نون بهشون قزم بدهشون معرفی میکنه و اینشون مثلا وقت بحث عرفانی برای خودش راه دیدم مثلا آقا نوشته نوشت چون ذادله مثلا رحلت شخصیه و بجام بساتت رو ذکر کرده بعد بحث نامتناحی رو دلیل مستقل ذکر کرد هم خیلی خنده‌داره این توی لهسونه فلسفی ما دیگه بحث مشهورات و امسانام که نداریم برای ادله فلسفی. این طرفیش که حالا اینکه دیگه خدا نامتونه هستی، مثلا حالا قبول دارن دیگه. حالا مسلمه این دلیلش مثلا یعنی که همه چیز خداوند به واسطه جوابتون بعد مهم مثلا او بعد بروناد تو. درات ارزش میگه که مثلا میگم اتهام میگم که اتهامش برهانی برهانی نبود خدا متوسل نبود که اصل همین نامت نائب بوده، از خود بساتر نتیجه گرفته شده که حالا در عبارات هم هست. اما چه چه دیگه دیگه‌ای که دیگه تتمه هست که حالا این از عزیزان توجه داشته باشن میگن بعضیا این رو به عنوان برهان مستقل هم در نظر گرفتن با بله اینو میتونید به عنوان شاورم بنویسید دیگه خیلی لازم نداره چون معلومه دیگه همه بردن بعدش من... هم بله. <تصفح> بله چون توی من یادم واسه این آقاییه که سر همین ادله و اینها اموالقاتی این داشتیم بعضی این رو هم طرح میکردن. با اون این که آجون ممکنه کسی بگه که همین وجودات دیگر خودشون بالاخره یه مقدار کمال که هستن قبول با خودمون مثلا مقدار کمال هستیم دیگران مقدار کمال هستن بعد خداوند متعال خب شما چی میگید؟ ما میگیم که بعد خداوند متعال نامتناعیست در کمال به تعبیر دیگر خداوند متعالیش نخصی ندارد کمالات خداوند متعال توقف نداره یعنی مثلا دیگه قدرت خداوند متعال تا این مقدار باشه بیشتر از این قدرت نداشته باشه خب این مستلزم نقص است. یعنی توقف در قدرت خداوند متعال در علم خداوند متعال، در, در, در کمالات خداوند متعال نیست بعضی ها؟ در بحث از تشکیکی هم همون گفتند نگه ما تا معابل به همون ما باین اشتراکه که همون ذات وجود مشارت خداوند متعال زعفش مشارت موجودات دیگه اینا تعبیر میکنن که میان آقا جون بالاخره ماها موجودات دیگه ما هم یه ذره کمالیم دیگه خداوند متعال هم که شما میگوید که بالاخره ماهاتون از در کمال است پس همه ماه هم باید خداوند متعال باشه یعنی بالاخره اگر ما نباشد یعنی یه مقدار کمال که همون ماه هستیم خدا ندارد خب اینه که arz که همه برادت این است که بابا جون عزیز من که همو نصیست به تعبیر دیگر یک موجود پایین تره یک موجودی که بالاخره یک چیزهایی دارد یک موجودی که مثلا الان به توابیل خیلی آمیانه صد درصد دارد یه موجودی که مثلا نیم درصد دارد, دارد. دارد نیم درصد برای خودش کمال است اما این چهارmentشوبه نیم درصده سراسر نخص برای اون موجود صد درصدی یعنی بله ما نسبت به موجودات دیگر کمال هستیم اما نسبت به موجود بالاتر که لذا و اتفاقا یک کمال محدودی که مثلا خداوند مطالح حالا به ابداعش به خلقش کلا در برهان بعدی بیشتر اشاره میشه خداوند مطالح آفریده که مثلا نسبت موجودات پایینتر پایین تر کمال انسان موجودات و, و حالتر نفسه اینی که مثلا ما به این امتیاد چی چیه پس وجود, وجود, مس وجود ما هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم که کمال است نخیر همین اصل ما از کجا اومده ما کماله وجود ما برای خدایوند من خالص کمالی است همه از کادم از میکنن وجود بالاخره هر کدوم از ماها یک نحوه یک مقدار کاملی داریم دیگه خدایوند متعالاً شما می‌فرمایید که بالاخره بنای در کمال است پس بالاخره این یه مقدار خاص <تصفح> این مقداری کمالات ما رو هم باید داشته باشه و الا میشاید متناهی در کمال کانس ناقص كنا خير يعني شيء بنخيل شماخل و او باز هم مي‌گيد در عالم شكل و تصور و خاصه نقاشي بکنید مي‌گه اي داره كماله اینجا خداوند خلايا كمالات اينگي گير كند همين اهل واقعي چيز مجزايي از این نیست و نخر وجود ما اتفاقا به موجودات باناتر سراسر كار هم سراسر نفس خود اینها اتفاقا در بحث فلسفه بحثي دارن تشكيل در ماهيت يا تعبير مي‌خوام در موجودات جنبيه يا موجودات برتر این بحث و بحث صدرالم هم داره تساي ديگه هم داره موجود برتر تمام آن چیزی که در موجود پایین تر هست نزدش حاضر است. پس دارید خود اینی و خود این نیم درصدیه، خودش این یک چهار چوب نیم درصدیه. زنی اتفاقاً نسبت به موجودی که مثلا چهارچوب چوب ندارد یا مثلا 100 درصدی، تمام نقصه تمام نقصه پس به طبیعی خیلی آمیانه کرد. گفت که وقت نساست کاملا عمل نه ما بلکه با چیزهای دیگر می‌سنجیدیم که کاملاً. نه شراب دارد؟ تا این رو بچه‌ها شما مستذین اون که اون قبل شما اصل اشکال بر خود وحدت شخصی وجود رو گفتید که واقعا بالاخره وحدت در این کثرت خودش یعنی ترکیب خودش یعنی تناقض می یعنی تناقض میکنیم از این موغایی که بالاخره محدود هستیم همین محدودیت‌های داخل چارچوب بخواهد خداوند متعال باشد یعنی یه مقدار کمال خداوند متعال چارچوبمند شد در قالب بالاخره قالب ها و قالب مختلف حد های مختلف قرار بیفت تا تجزیه شوند که همون قبل واقعا است که به همونجا شد همین از بکنم میخوام میگم که اتفاقا اینها نسبت به خداوند کمالی محصوب نمیشه قد همینطوره همینطوره من این رو بخونم برای عزیزان من از صدرابتی سلا یک قرار نیاز به نوشتن نداره فکر این درنگو هم عنوان کلاس اون وان کیلو این دیرات اون حاویش حالا البته متفاوت. خیلی آخرشون داریم الان می‌خواین ببینیم. نه خود نه بازخورده. نه خودش می‌گن اصلا. نه خودش می‌گن اصلا. نه خودش می‌گن اصلا. نه خودش می‌گن بقیه عواشی بود و این رو بود و همین رو بود حیثیت که جلسه وقتی رو این بود خود متناقض، خود متناقض، این رو نبود اما تو همینی که از میکنه، یعنی اطلاقا من یادم خود همین آقای از زفنه هم زیاد دید وقتی که از شد که خود رو وجود خود متناقض و بدخلی فتبیه میخواست و. و خود آقای تهرانی هستون عباراتش این بود که بداخل هر هم تراش بکنه بعدت حضورتو نمیفهمی یکی بهش میده آخو خب با خب وقتی شما میگه اصلش هم قابل تصور نیست چرا آقای رو همینه یادا بهشون هم میبونه خب دلیل داریم چطور کنیم وقت این دلیل به ما میگه وعدده وجود بالاخره با اینجور جفته جورش کرد یه جوری بالاخره با رو در ذهن جا یه جوری بالاخره قبولون حالا با مثالهای مختلف در هم هم که در حیید فرماش آقا ممزه بالاخره با این دل دلیل ها اونایی کلبته خود حالا در چهار حرف میزنن ولی بلا بعضی که اصلا اون رو این داروندهای سرزمین که دارند کلوزا، این باشه. راي موندن جوين که بحث دیگه این سری از که موجب خداوند این باشد که موضوعات به این معنی که این خب خود صدر بعض بعد از عباراتی که بد نیست توی این شواهد از عزیزان میتونن ببینن این تقریبا کتابی است که خود صدرالمتأله بعد از افکار هم نوشته و خیلی هم میگن که نظرات نهایی صدرالمتأله رو در همین شواهد الروغوبیه میتوانید ببینید بعضی ها معتقدند کما اینکه شاید همینطور طور باشه یعنی میگن که بالاخره سختتر از اون اصفار هم هست چون همون خلاصه و شکییده شدن تمشکیده تمام, تمام اصفار رو در همین شواهد روغوبیه میتونید ببینید که مثلا حالا تو اصفار مثلا عبارتی رو 50 صفحه بس کردن این همون رو ما مثلا در دو صفحه صفحه گفته توی همین مشهد اول یعنی مشهد اول شاهد سالس بعد شاهد مشهد اول شاهد سالس توی شواد روبیه اینجا بعد هر شاهدی هم اشراق داره اشراق اول اشراق سر دوم اشراق سر دوم که حالا اشراق هم اشاره به این است که میخلی از جانب خداونده متعال آمده عدله مختلفی رو توی این شاهد سالس شما میتوانید برای وحدت وجود گوید یعنی توی اشراق های مختلفش و انهای مختلف این برهان بر وحدت وجود ایشون آورده حتی این برهان مثلا بعدی را هم که ما میخواییم مثلا عرض بکنیم این رو هم مثلا در شاهد بعدی بله این مثلا در شاهد یازدهم هم الان دلیل بعدی حالا من از این شاهد دوم رو میخوام عرض بکنم که مربوطه به همین بحث خودمونه به سری عباراتشو بخونیم که ببینید اشراق مشهد اول شاهد سالس اشراق ثانی فی وحدانیت الواجب تعالی بردشون تبیرش که اینه که این نرنا به اعلام الهی این عبارات رو ببینید برای ما به اون اعلام الهی اصلا انسان خالص صفا میده اینا رو بخونه براتوش چیزی که داره ارشیان از المطلب شریف الذي هو الوجه الكبرى لاهل سلوک محکمن فی سماع و ساقته میگی محکمن در اون آسمان و ساقته و اینجا آیه قرآن آورده علتی ملعت حرسن شدیده حالت آیات قرآن هست خداوند مطلعا آسمان ها رو پر از این مثلا مراقی کرده و این که از اینه دیگر نمیتوانند استراغسن بکنند این تعبیر آورده ملعت حرسن شدیده لا یصل و علیه لمس و شیاطین الاوهام وَلَا يَمَسُّهُ الْقَاعِدُونَ مِنْهُ مَقَاعِدَ سَمْ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ میگه اونهایی که بالاخره میخوان استراغ سم بکنن نمید مگر متحرون من الارجاس نفسانیه المکتسبه من ظلمات الاجسام مگر اونهایی که بالاخره پاک شدن از اون رئیس های نفسانی که از این تیرگی های جسمانی ایجاد میشود بعد تبیلشون اینه که بیان و ذالکه اِ واجبه لما کان ینتهی علیه سلسلت الحاجات و همه حاجات و تعلقات وقتی به اون منتقیم شد فلیس وجوده متوقفاً علاشه وجود توقفی برچیدی ندارد حالا این طراسر اشکال و عبارات رو دیگه وقت به وقت شواقه درست نمی‌خوایم بکنیم فیکون و بسیط الحقیقه من جمیع الوجود و ذات او واجب الوجود بنجمیع الجهات کما انه واجب الوجود بذات در ابهات مختلفی داره بعد تا آخرش به انجام میرسه که فلواجب الوجود بذات یجب و واجب است هنگیکن من طرف فعلیه. واجب از, از اون شدت فعلیه و کمال و ت... کمال تحصیل جامع الجمیع نشاعات وجودیه بعد خداوند مطال همه نشعات وجودی رو خودش همشون همهشون باش رو خودش باشه فلان مکافئ له فی وجود هیچ هیچ خلاصه غیریتی شبیه در وجود برای اون نیست فلان ذله و لا بر شبه بل بل ذاته من تمام الفزيلة يجب ان يكون مستند جمیع و من اکل خیرات و به جميع الكمانات و منبع كل خيرات فيكون به هذا المعنى تام من فوق تمام اگر میگم خدا تام مفوق تمام منظور حالا میگم عبارات مختلفی در این زمینه آورده که ببینید هیچو مثلا همین قاعده وسیل و حقیقت کل رو همین این چند موردی که ما از همدیگه را تحقیق کردیم رو همدیگه خلاصه اینا رو ریخت تا تقريباً هر جا یک نتیجه‌ای گرفته شده که حالا البته خود نقد این اینا تیک تیکش بعضی دفعه اصلا دیدید دفعه اونجا معجزه رخ داده اصلا بلا دلیل یه جایی مثلا ایشون میگه تغییر کنه سیتل اول میگه همه حاجات به اون منتج منتهي میشوهد پس متوقع حسابش رو رد گذاشیم پس سیتل حقیقا من کلش اشا میگه حالا اینها که مختلف میگه عبارات متعددی عبارات متعددی رو شما حالا البته اینجا ایشون تو این عبارت میخواد مثلا استفاده بکنه که واجب دیگری غیر از خدا نیست اما خب نهایتش همین بهره ها استفاده میشود بعد میگم هی ایشون تکرار میکنه دوباره مثلا قدمر توی اشراق سابق فی نخی الحد والبرهان انها تعالی قدمر و ان نزاته تعالی صرف الوجود صرف الوجود اینه که بخیر تمام وجود است هیچ غیر الوجودی توش نیست وجود بسیده بله بل ببینید بل و الوجودا اعرف الاشیاء فلا معرف له ولا کاشف و افسطها فلا جز له خارجن ولا ذهنن میخواد اینا به خیلی نسجی بگیرید خدایی جزئی خارجن ذهنن ندارد و از لا ماهیت الله فلا جنس و ولا فصل فلا حد لح لترکب الحد من هما قالبن و لبساطته همینی که از کردیم یه دفعه اینجا نتیجه گیری شد حالا که خداوند متعال حد ندارد این خداوند متعال جزء ندارد جزء خارجی و جزء ذهنی ندارد پس خداوند متعال چیست؟ بسیط است حالا جزئه ذهنی نداشته باشد چه غفتی داد بعد تعبیرش هم دیگه بعد خداوند خداونده متعاره نمیشه بعد تعریف کرد ببینید تعبیر همون دیگه بلا جنس سلقه ولا فصل، بلا حد دل اینجا حد منطقی تو ذهنشه ببین خواهم که از کجا به کجا رسید یه پاتی شد اینی که از کجا رسید که در اینجا رخ داده اختاده این جا رو خب بله جزء وجودی ندارد چه به این داردی خداهاد نمتاید فصل به قول اینا مابهل امتیاز نداشته باشند اصلا یه وجودی به تمامه مابهل امتیاز است و شما مابهل اشتراک رو ثابت کنم تا مابهل امتیازی خداهاد نمتاید دیگه حالا مستلزمات اینها رو بگیریم خیلی میانم از اینجور عبارات زیاد هست که عباراتی همه با, با این عباراتی که همشم آیات برهان و خیلی الفاظی که انسان واقعیت خودش به خیلی خود تفسی اینها رو خودنه کیف میکنه که چایت؟ بل بله بله بله خب این پس این حالا میام خیلواقع ما توی همین یه دونه برهان بله سه تا برهان رو از این که براهینی که تحت کردن رو از کردیم که مهمترینش همینی بیان اصل براهین همون قاعده بسیط و است اما برهان دومی که این هم برهان مهمی هست که در درجه دوم براهین بحث وحدت وجود قرار دارد همون برهان ازلیته حالا مهمترین برهان همین است که قسم کردم خدای جهال طیازی میگفتن که آی جوادی هم بالاخره تو این برهان گیت کردن دونت مثلا حل کنه ولی برهان دوم رو خود ایشون هم این برهانی که من عرض می‌کردم خود ایشون هم قبول دارن که این برهان به نخره غلط است و فکری نباشه خیلی سختی کاملش به هر حال به هر حال لنیه این مسئله هست یعنی که آهی اون ذهن بالاخره تازه هنو قاطفاتی نشویتی داختی که میاد سهن بالاخره اشکال های فرقه ها مربوخ هست اما حالا برهان بعدی که برهان علیت این رو چون این از این پیشتر پیشتره، هست این رو دیگه لازه رو ببینیسیم این یه برهان درجه دوره همه از این برهان میگم پیشش م تا این خیلی طول می شه حالا مقدمات توی صفحه توی و مداد میگیم خاصین والا كتبش بتون بالای عن دیدگاه تفکر. ما باهانه علییتی که برای بحث رفتارهای شخصی وجود می‌خوانند، می‌خوام بگم که ما همین باهانه علییتی که همه شما وجود دارید، بحث علییتی که همه شماها وجود دارید، از تحلیل بحث علیت به این می‌رسیم که اصلا علیت غلط است. علت معلوم نداریم همه چیز فقط یک موجود از مراوان متوال است. ما هم کیزیمم بولغران علیت بر تقسیم بر استفاده استعداد بر روحان الیت برای اصفات وقتی اصفات محصد شخصیه بود شخصیه وقتی ماهینا خیلی تلاش کردیم که سرسامون بهش بدیم معایی کتابا نبا کنید در هم کلاصر پر از این حرفات یعنی خیلی از سرسامون خیلی تلاش کردیم که سرسامون کلاصر علمی بهش بدیم خب اللذ بلات به همان ایجاد خودش ایجاد خودش معلول را دقیق نمی آورد را دقیق نمی آورد چیزی <تصفيق> انا توضیحش که چیزی باشد باشد بعد علت آن را که در این صورت این صورت تحصیل حاصل است. ایجاد خداوند یعنی وجود ناظر وجوده منظور از ریسه یعنی و دفن فلس فلس فلس فلس باید این با اینور ربتاس با اینور ربتاس نشيخون شيخون لحر رأس نخیدم عمل با این مآبال با این قراستیه به نژاس فقط از نظر از از از تباخش از ما در این لحظه تصاویر ما به زمان، و در حقیقت چیزی، و طرف من، و من که من، خود من، در اراده من و خب این مقدمه اول این برهان میگه که خب ایگاه کنید شما حالا میشه اول مثالشون رو بزنیم میگن که شما نگاه کنید از اول مثالش رو به آن خرزه کرده میزنند. من این رو نظیر بیارم بعد بریم از سر اصل بحث استدلال و اون اینکه ما وقتی که میخوایم یک تصوری رو در ذهن خودمون ایجاد بکنیم اون تصور رو من ایجاد یا نه؟ اون تصوراتی که در ذهن خودمون ایجاد کردیم یعنی اشکال مختلفی الان من مثلا به شما میگم شکل خانه سری تا میگید خانه شکلی در ذهن شما میآید یعنی تصوری در ذهن ما میآید این تصورات مختلفی که در ذهن ما هست این این چور نیست که نگاه کنید خیلی مهمه این اشکالی که در ذهن ما هست مثلا من به شما میگم تصور خودت تصور ماشین شما اول نمیگید که خب پس یه ماشین داریم ما من میخوام این ماشین رو رو در ذهن ایجاد بکنم این اگر رو بخواد هر اتفاقی بیفته این شما اول تصور ماشین در ذهن ایجاد کردی حالا دوباره واسه دوباره میخوای ایجاد بکنی که تحصیل حاصله تصور خودش ایجاد شده بلکه وقتی میخواید تصور ماشین رو بکنید به محض اینکه شما التفات به ماشین پیدا میکنید همین التفاتتون یعنی ایجاد ماشین همین التفاتتون به ماشین یعنی ایجاد تصور ماشین در ذهن هیچ چیز جدایتی نیست به ما احسنتون به محل التفات این ایجاد میشه و احسنتون آقام تعدیل کنم به کمتای کنم از اون طرفم به محض اینکه من التفاتم رو ببرم کنار همین که نظرم رو نظرم رو ببرم کنار رفت میشود مثلا در آن واحد میلیون ها تصویر بدونه که حتی من بخوام که مثلا اول تصویر ایجاد کنم بعدون معدومش بکنم در ذهن ما میاد از ذهن ما میره بخوام معدومش هم بکنم ای اینطوری نیست که شما بگید خب حالا من میخوام این تصویر رو معدومش بکنم بعد معدومش کردم معدوم نمیشه مدام در ذهن شماست یعنی به آنم ما التفاتتون نه اصلا حقیقت التفات شما همون ایجاد اون از خلقون همون التفات شماست به محصه التفات کن پرید می آید محصه این که التفات رو برگرددین از بین می روید حالا وجود این تصویر رو هم ما می توانیم بگوییم اصلا وجود غیر از وجود من داره نه با وجود خود ذهن خودمه وجود خودمه عین خودمه اصلا تو خود خودمه حالا خدا اینها حالا اینها خوخوان این رو رفتش بدم به وجود علت معون همین رو میخوام بگم میخوام به که تو بحث الیتتم اینن همینه. ما تو بحث علیت خداوند متعال مطال مثلا میخواد این عالم رو خلق بکنه. خداوند متعال که خواد عالم رو خلق بکنه مثلا اول خب یک خلقی رو خداوند متعال هست یه چیزی هست من این رو میخوام خلقش بکنم یعنی خب مثلا یک مسبوقیتی دارد حالا بعضی میگن که بالاخره اینها یک بالاخره سابقه به یک نحویشون اینها مثلا ازلی هستن هم قدیم هست. از اولش شکلشون بوده خداوند متعال میگه خب مثلا این شکله رو من میخوام چیز بکنم یعنی یه جایی بوده حالا خداوند مثلا میخواد بیاره اینجا یا نه به محض اینکه خداوند اراده کرد. همه اینها پدید آمدن اراده اینچور نبوده خداواند میخواد میکه بگوید که من اراده می‌کنم، مثلا اون چیز را بیافیدن میگه اگر همچین چیزی باشد که این تحصیل حاصله یعنی اون اول وجود دارد حالا باز خداوند نبوده می‌خواد بهش وجود بدهد این تحصیل حاصله که این وجود درخالی حالا باز برات همون صورته حالا انقلتون بریم همون صورته همون صورته, همو صورته چی؟ در همون صورته چه گونه است؟ خدای خرده همون صورته اول خدای واحدی صورت اجازه نه صورت دیگه راسه ایجاد کنه به باب علم اصول می تریم ان شاء الله میافتند دیگه خب حالا توی مرحله نقد نمیخوایم وارد بشم اصلا تحلیل مسئله رو روشن بشه مثلا تو من اینجا نقدهایی این که میخوان عزیزان میخوان نقدهای درستیه و ذهن میگم سالمه صادبه بخره همه اینها میکنه این که این هم همین رو میگه میگه خب در اینجا که بلاخره تحصیل حاصل که نمیشود لذا خداوند مدعال همینطور که من به محض التفات به محض التفات یک چیزی رو ایجاد کردم, کردم ایجاد شد خداوند مدعال به همون این ایجادش به همون ایجاد خودش یک چیزی رو آفریده یه تعبیر دیگری بکنم که اشکالیشون رو میخواد کمرنگ تر بشه نگاه کنید بلاخره در پس ما بحث ایجاد و اینها اگر بخواهد غیر از رفت ایجاد خودشی حقیقت رفتیه دیگه رفت یک فعلی به هستمون اون اگر غیر از اگر غیر از این رفت بخواهد حقیقت دیگری باشد که ما از بین اینها رفت و بیرون بکشیم لازمش اینه که اون حقیقت بوده و اون حقیقت هست دیگر اون وقت ایجاد معنا پیدا نخواهد کرد. لذا طرفی هستند برای اون فعل خداوند متعال برای این به تعبیل ساده تر برای این نسبت نباید ما قائل بشیم در بین نسبی که ما خودمون فرض میکنیم حالا نسبت این اقتدائیت نسبت مثلا انتهاییت بلاخره یک انتها و مثلا یک اول مقصد و یک آخر مقصد و یک کسی که داره داخل مقصد تیمی کند و فرض میگیدیم بعد نسبت اقتدائیت انتهاییت رو از اینها انتظا میکنیم خود این معانی حرفی یک معانی غیر مستقل تعبیر اینها یعنی اینها قائم به طرفش هست در خداوند مطال اینها میگین که خب بلاخره نسبت قائم به طرف قبول اما قائم به یک طرف هست که قائم به دو طرف میگن اگر بخواهد قائم به تو دو طرف کاشه یعنی اون اول هست بل این نسبتی بین این ها ایجاست که این بودن چند تحصیل حاصل خب اینم به حاله پس باید بگوییم که نسبت یک است و طرف دیگری وجود ندارد و محلولات طرف مخلوقات طرف نسبت نیستن خود نسبتن عین نسبتن عین همون ایجاد خداوند متعال و ایجاد هم یعنی چی ایجاد هم که چه فعلی جدا از فاصل نیستی همون فعل فاعله همون رفته به خود فاهله پس وقتی مخلوقات همه شدن عین ایجاد یعنی مخلوقات شدن چی تمام رفت به خداوند متعال تمام رفت شدن به خداوند متعال مخلوق. و رب یک طرفی شد و در مثال که از رب استفاده کردند در مثال حرفی ما دو طرفه اینه مثلا حرفش رو از این جهت میزنن میگن که نگاه می کنید مثلا شما یک معانی دارید میخوام بگن که حالا برای تبیین مساله است که میخوان بیان که ما ها وجودات ربتی هستین میگن معانی حرفی یک معنایی هست اما حقیقت جدایی از رفت نداره برای از اون جهتش نمیخواد اینها گروب پیدا کنن. از این جهتش میان تو که تا که معانی حرفی حقیقت جدایی از رفت ندارد لذا حالا تو بحث آقای آقا این هم آقای نقصود لین شام اگر در بحث حقیقت وز اونجایی که بالاخره رسیدید که وضع آموز و چه مشکلی بود مشکلی مشکلتونم بحثن طبیعی هر ذهن انسان میگوید که با وجع من معنا رو به در نظر نمیارم لازمش واسه وضع میکنم تو وضع آموز و لخاص شما به مشکل برخورد تو هم حل معانی حرفیه بود میگفتید معانی حرفی اصلا معانی مستقل نیستن تصور مستقل ندارن وقتی تصور مستقل ندارن چطور معنانا رو براشون بارکنن کنن باید در چیز دیگری تصورش حالا اونجا هم جوابشون میخوام دارم بله وجود دارن در اصلا اینا خودش یعنی اشکالات در مراتب هست یعنی بگم که حالا ما در چند باز و چند رابطه به اینها جواب بدیم میگیم همینه یعنی لاگرا میشاد به اونها گفت که اینها وجود دارن اما وجود غیر مستقل حالا اصلا او اون اشکال بحث این در اصول اومده بحثی که از بیخ اصلا غلط حالا اشکال هست اشکالش اصلا حالا اشکالی عرض می‌کنم که اشکال خود اشکالون بحث میشه خب پس اینجا چی شد پس اینجا این شد که وجود ما بلاخره این بحث خیلقت رفتی یه طرفیه دو طرفیه اگر بخواهد باشد تحصیل حاصله پس ما وقتی شدیم این رفت یه طرفی دیگه ندادیم فقط خدا بایین رفت ما شدیم این رفت پس شدیم تمام نیاز به خداوند همانده بطاقیم درزا اینو که نجو کشتم له رفت نیستیم چون شیعون له رفت تحصیل حاصله در حالی که بلاخره به با این هم نمیشود بشود یعنی ای چیزی که موجود باشد خداوند باید بخواد دوباره بیاردش یعنی اصلا علیت نشد پس ما این رفت هستیم این مقدمه اول شریف بده خداییم فعل خداوند بنده متعال یا به تعبیر دیگر که مثلا همونه دیگه این مثلا خود فعل خداوند متعال نماز ظهر و شما شما خیر خداوند این چیزی که دوباره افتاده بیرون دوباره این افتاده بیرون دو هست بینش دوباره ما داریم چی داریم با دوباره انتظار نسبت میکنیم ما میخوام بگیم که در اینجا این رفته فقط نمیشه وان دو طرف انتظار شود چون شو دو طرف انتظار شود دست به لذا فعلا به اون فعل صدوری خارجی متجزم نمیتونیم بگیم ما این در این اینم به معنای غیر مستقل هست یعنی خود هر نسبتی رو شما اصلا اشاره خارجی میتونید بکنید در خارج برای ابتدایات می‌میره وجودی فرض بگیرید این ابتدایات می‌گم تو ابتدایت کو اینکه مثلا من همینم خامیدم اول مثلا قوم برایان ابتدایت بذارید میخوام بگم محمد همچین فرض یعنی عین نسبتی عین ورثه کو گفتم این مقدمه این حرف اوناست دیگه بعد بعد هست اونا حرف پس حالا تو پیش همون خوبینه و گی نداره. که هست. ازت که بله، به که تمام و همین خوب، خوب، خوب. خوب، خوب. خوب، چیزی چیزی خوب. خوب، چیزی که خوب. خوب، خوب. خوب، به خوب. خوب، خوب. خوب، خوب. خوب، از ذات هیچ حکمی را هیچ را نمی تحصیلات زیرا وجود مستقلی ندارد که بخواهد فکر داشته باشد لذاب اینجا نیجا به دنگاهی نظام خود وجود را حتی که هیچ فکری نمیشون نسیمت بدیم خود وجود هم پس نیست پس خود وجود را هم, هم نمیتوانیم به तो नुस्बत तक तो शायद मीठा हो जाए fakat मीठा با حلت که استاد به ذات موجود است موجود راگم ما در بحث شخصیه زدیم دیگه گفتیم که در بحث شخصیه متوای بحث شخصیه اینه که وجود به مخلوقات و به موجودات دیگر غیرت خداوند مخاطب بالعرض و مجاز نسبت داده می شود به ذات فقط خداوند متعال میگفتن خود همین اصلا مستلزم تناقضه اما واقعاً چه ماجذه رفتن که این برهان همین تناقض رو برای ما ثابت کرد مقدمه دوم چی میگه میگه که جون خب شما گفتید که وجود ما همین مثل وجود نسبته عین رفته ربته حالا نسبت اصلا ما به ازای خارجی داره اصلا میتونید شما به نسبت جدای از طرفش جدای از طرف عینش حالا در اینجا یه طرف داره حکمی رو اصلا بدین نه حقیقتش ما انتظار از طرف این از هر حکمی رو که بخوایم به این نسبت ما بالاخره بار بکنیم این رو به حسب طرفش داریم بار میکنیم پس ذا مستقلا هستن خودش حکمی رو نمیگیرد جدای از طرفش هر حکمی که از حقیقتا مونه طرفشه از جمله احکام هم وجوده وجود رو هم پس به همین نسبت بی نیاز مستقل مستقله از طرفش نمیتوانیم نسبت بدهیم یعنی همین وجود به ذات ما به طرف هست بلعرز ما چون طرفش هست بگیم اینم هست اما میشه هم شخصیه وجود, وجود. و هر خواسته کنم به بغض ابن عربی هم مثلا خطورا که مثلا زده شده و بعضی ها تو براهی دار در بیار. خب این اصل طرح این بحث. اما خب نقده که می شوهدی فرمودند و درستی هم هست و این ها این دو تا مقدمه بود احسنت رو تا مقدمه ها دیگه آخرش نتیجه شده نکردن بیگه علا می شودم آخرش رو نتیجه ذکر کنید رو همون... چون حالا موجود در چیز نداره که همون چیزه میشه به مواد فلس نته جون جونیس. من آه شما دل تا تازه بکنم. حالا از آخر هم میشه و شروع بگم. اصلاً اصل نسبت به بلاخره ما تارف که نداریم تارف که نداریم که بنا نیست که بالاخره به هر نهبه ای که شده بالاخره ما یک چیز رو بچسبونیم اون چیزی که مسلم هست این است که خود یک سری از صفاتی رو که ما داریم اینها صفات ذات اضافه هستند. اصلاً الیت خود نفس الیت اینها فرق بروجوده بل اخر طرفین از نه علت باید باشد معلول باید باشد ما این نسبت پاز بین اینو انتظار بکنیم نسبت طرفینی خود شما میگید نسبت طرفینی اصلا محال است که از یک طرف بشه و رو انتظار کرد زور که نداریم که شما بگید الا علاوه بل اخرش چیکار کنیم باید ما انتظار بکنیم از این طرفین میگید ما معلولی از این طرف میگید خداوند مقابل علت دید. اون طرف ما رو حل کرد کرده حل کرده خب میگید یک نسبت دو طرفی رو انتظار بکنید و توشم میگید می بینید من یه طرف شما میندازیم. نسبت دو طرفی اینها از جمله اموری است که خودش لا خودش رو نرز میکنه از قضایا از مفاهیم تحلیلی است یعنی تحلیل خود مفهوم تو خودش خوابی خودش رو ببینید این قضیه رو ببینید خودش تحلیل خودش رو میکنه. شما میگید نسبت های طرفینی نسبت طرفینی که محال است که از یک طرف شود اون رو انتظار کرد. لذا خود همه امور دیگر مثلا خود مرید و مراد یک مرید داریم ما یک مراد داریم ما یک اراده داریم در بحث اراده اراده یک طرفی اصلا محال است معنا ندارد که اراده یک طرفی رو ما بخوایم ایجاد بکنیم و لذا وجود معلول هم یعنی خود علت هم بدون وجود معلول این معنا ندارد که باید ما از این وسط بخوایم انتظار علیت رو بکنیم یعنی یک بالاخره موجد هست یک موجد هست یک ایجاد هست اصلا نفس ایجاد شما مثل در اینجا بالاخره یک معاجزه رو اختارید ایجاد رو برای ما اووردید موجدون علی رو موجد رو در اینجا چیه؟ شما انداختید چطور میشه بعد اصلا مفهومی که قوامش به طرف این هست که همون ایجاد هست این رو شما بخیر تلویزیونش بندازید واقع در اینجا شما خلق کردید به خاطر اینی که نتونستید تصور بکنید که خداوند متعال چطور بالاخره مخلوقات رو میآفریند بالاخره صورتی بوده بعد این رو بیافریند چه شکلی بوده به این مشکله دچار شدید بالاخره گفتید که دوتا تا خلق هست دو تا تناقض هست یه تناقضش بالاخره به قول شما سبب تره تناقض سنگین این تناقض سبب تره اینه ما نسبت دو طرفی از انتظار بکنیم یه طرفش رو بگیم حالا آقا جشمان رو ببندم نبینیم نسبت دو طرفی رو از یه طرف خب این اخوانی تنها دیگه خودتون میگید نسبت دوترفی ایجاد یک موجد میخواد میشه بگید موجد نمیخواد؟ خب برای موجده چی رو ایجاد کردید؟ اسم ایجاد رو میذارید همین التفاتی که شما گفتید یک مثال التفات رو زدیم ما حالا توی مثال ذهنی ها رو کردیم توی بحث التفات مگر میشه از که بالاخره من یک ملتفت داریم یک التفات داریم ملتفت چ بیشتر شما مفهوم بالاخره ذات طرفه، منظور شما این طرفه که ذات طرفه که ذاتیشه یعنی به مجرد اینکه یک طرف رو بندازید ذات منحل می‌شود که امور ذاتی همین است قوام ذات به اون هست شما بالاخره مفاهیم ذات طرفه این رو درو درافتادید اینا درافتید خدای خداتون برسه دیگه حواستونو پرت نکنم که اینو نبیدید پس اینش محال است باعث شما اون طرف رو حل بکنید نه اینکه ببینید از این کارها زیاد می‌کنن این توی بحث فلسفه بحث فیزیک و اینا هم زیاد تداخل نکرده معلومه در فیزیک وجود یک مشکلی در عالم فیزیک رخ میده اینها بعد میبینن که یک مدلی برای حل این میتوانن ارائه بدن خود مدل دلیل نداره خود مدل دلیل نداره اما میبینن که خب خوب اینا رو حل کرد میگن خب حالا مثلا این مدل رو میپذیریم بعد برای کار راه کار راه لذا تا وقتی که بالاخره یه وقتی کسی نگارم میاد میگه آقا جو من هم یه مدل دیگه می میدارم که بیشتر حل میکرد میگه خب بس اونو میپذیم خودش چون دلیل نداشت حالا دلیل شده وصول خودم هستا این بحث برهان اقتضایی که معمولا به در چیز گفتن اشکال عمدش همینه یعنی برهان اقتضایی بالاخره ما یک مشکلی داریم نمیشود تحلیلش کرد جزواین پس اونو میفذید نه اون دلیل نمیشود اگر رو داشته باشد در انحصار هست عقلی باشد جوابش به اون معالف خب این در اینجا هم همینطور در اینجا شما به این مشکله برخورد کردید فلسفان چه اتفاق می افتد یعنی بحث اصلا بحثه تشکیقیه خودش دلیل نداره کسی نمیت برهان بچینن از که خداوند متعال باید وجود شدید باشد بغیر وجود ضعیف خودش دلیل نداشت اما چون اثبات وجود رو نتونستن با اساس وجود کثلاس حل بکنن گفتن که خب پس ما میگیم در شخصیه بغیر تشکیقیه که اینا همون خب ما گفتن خب چرا اگه بحث تشکیقیه میگیم اصلا شخصیه وقتی که به خاطر بی دلیله شما میگیم ما اینو میگیم تا اتهام برای این طرفم یه دلایل جفتجوره پس ها از همون موارده اینه که براخره شما بخواهید یک مفهوم ذات طرفین رو از یک طرف انتظاب بکنید نه تنها که دلیل نداره بلکه خود متناقض تناقضه اون رو باید شما یه جوری بیاید حل بکنید چون اون رو نتونسته حل بکنید خب ما اینجوری حل بذاریم اینکه دلیل نشد نتونسته اون رو حل بکنید و حق نزد که حتما یه جوری بخوام من حل بکنم بعدش آقا جون به حسب عقلی از میگوین چرا شما همین شکل تو ذهنتو میسازی شکلی میسازی خب این چطور اتفاق مفته به حسب عقلی به حسب تعقلی هم هم به ذهنش روان باید تمرین بکنه که بتونه بدون تبع شکل سازی تصور بکنه تعقل بکنه چه اشکالی دارد خداوند متعال ابداع بکند انشاء بکند لامن به تعبیر روایات لامن نومن سایبیو فاینه شما اگر برهان بعد بر استحال این ایجاد بالاخره قب... ابوردید قبول قران که نداره تو شکل کله تون نمیاد میوه تصوور آقا چجوری میشه من همیشه. آقا یه جای ما همیشه بعد از آقا رو تصفرم میذان حالا شده اصلا موضوع میذان میذان فنا خوب بیا نهایت نهایتش خیلی میخوایم با شما راضییم خدا متعال هم متعال اول این تصورا رو ورده تو ذهنش بعد مثلا این آفریده خوب حالا یک مسبوق به تصوری دارد. شما نهایتش بگویید که ما فارغ داریم خداوند متعاد یه اعیان هست یه اعیان هستی در همه عرفم هم بیزنند بحث اعیان ثابته میگن همون تصورات این فلواقع صور علمیه ی هست حالا من حلش کرد یه اعیان هست, هست. خارجی است یه دونه تصورات ذهنیست نهایت شما بگید اون تصور ما خداوند متعاده خیلی هم بخواییم با شما راب بیم اون تصور خداست ما از کنجا شدیم خدا؟ اول تصور رو کرده بر طبق اون تصور مثلا ما رو آفریده، در حالا خیلی هم نمیدونید تصویر بکنید دلیل نشد برای اینکه ما خداییم دلیل برای این نشد برای این که ما این رفت هستیم اصلا رفته بدون طرف این نحاله بعد تیکه دوم هم که فرمودن که آقا حسن با تهیتی ما را مقدمه اول مقدمه دوم که آقا یعنی چی؟ شما میگوید ما خلاصه اساسی کردیم نیسیم. بله؟ ما به که که که رنگ زاشته می ناخوام بحثی کوسیدا بکنم بود که خصوص کنساتو شد از اون میاد رو داشته تشکیلی بله همینا اصل در شواهد فلسفیشون تماما اینه تحریری کسیت رو نداره؟ بست کردم مشکل ارسال اداره خاطر خلق این رختات که برای اینها معقول صانیه تصفی رو در اینجا وجود رو این خارجی پست کردن یعنی خارجی پست کردن به این مشکلات برخورد کرد. اطلاع تو کتوب فراغوان ارخان فصل و نقد و نبود و بلا سیطه ایدار آمالی یا جاهای دیگر رو شما ببینده همه این رو معتلفند که خیلی دیگر رو تصفیل کرد تا کلیه شخصی وجود این ما متفنن بر قضیه اثبات وجوده یعنی بالاخره ما اون مشکلات رو بهش خوردیم از لحاظ اسات وجود نه پذیرین با اصلا تکثر ذاتیه حالا البته ما استدیم که اینجوری تحلیل کردیم بو برهانا رو گفتیم که حالا اونای حرفو میزنن اما حالا ما واسه باب دفاع مرحبا به مرحبا بناصران ما بگم ما اینجوری تحلیل کردیم که حالا سعی می‌کنیم منطق کرد بحث اسات وجود رو اینا تغییر بدم سعی می‌کنیم رو انجام بدیم بالا همینطوره خیلی هم مختلفان تصویر دادن تصویر دادن اینا همش که نه اما بر بحث اثبات و اینکه در حقیقت عالم خارج بله حالا ما اینو تقدیر کردیم که حالا درست